و الحمد لله رب العالمين و صل الله علی سيدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المحسومین و لعت و دائمت و علی دائه مجمعین اللهم افرنا جمعی المشهرین و الحمد ب... ب... یه مقداری دراجی به یحیل عذب طولانی صحبت شد تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که انصافت مجموعه شواهدمانشون میده که این یحیل ازرقی که در روایت آمده همون یحیبن عبدالرحمن ازرق باشه که نجاشی توصیخ کرده خود ما هم با مراجعی به روایاتش و با در نظر گرفتن این که اکثر روایاتش از طریق صفمانه و احتمالاً صفمان راوی کتابیشان باشه چون ما اگه ذهن آقایین باشه ارز کردیم این که میگن لا و سر یوسر انسقه خب احتمالاتی در این شده که اینجا فران نیست گفتیم که از بهترین مواردی که صد و عنوان گروی باشه یروی این اینکه راوی کتاب باشه چون یک دفعه از یک شخصی راویه مثلا یک مسئله است. حالا آین گفتن همین هم مشمول عبارت میشه اون قدر متعقن واضح واضحش اونجوریست که راوی کتاب, کتاب رو، الان ما نمیتونیم بگیم چرا چون من معیارش رو من ارز کرده این هم مباحث بهترین معیار در راویه کتاب همون کتب فهارسه مخصوصاً گفتیم شاید در بعضی از موارد بله نجاشی هم این قاعده رو نیارده نجاشی نه برای ابن عبی نه برای صحفان و نه برای بزنطی این رو شیخ در قدو قبرده نجاشی هم به این قاعده اشاراتی اشعار نداره دقیق میفرمایید اما گاهی اوقات تو فهرستش میگه فلان و فلان سغتون لهو کتاب نوادر نویانه گفتیم شاید اشعار به این باشه و اگر ثابت شد که صفوان راوی کتابی شانه این ارزش بالایی بشینه و راه این که بشناسیم صفوان راوی کتاب هسیه نه همین فهارس اصحاب که متاسفانه در این دو فهرستی که ما داریم یکی فهرست نجاشی و یکی فهرست شیق توسی در هیچ کدوم صفوان نیست لذا الان ما به حسب اون مقدار علم خودمون خیلی وضوح نداره بگیم صفوان راوی کتاب ایشانه چون در این کتاب ها نیامن. اما چون روایات زیادی نسبتا ما داریم از این شخص صفوان از اون عرف کرده و مکرره زن قوی داریم که صفوان راوی کتاب ایشانه. این زن قویس اما از کدم اون طریق متعارف کتب فهارسی در فهارس اسمیشا نهیم الان این کلیف مکان و تا اینجا رسیدیم که یه یبن حسانه از رق و الان فقط در عبارت شیخ صدوق داریم اونم تو محشقه از کدیم یهتمل یهتمل احتمالاتی در این کار صدوق هست که احتمالات اساسیش دوتاست یک این که قائل بشیم مرموم صدوق یا استادیشان ابن الورید استظهار کرده که یحیل ازر، یحیل نه حسان ازرم کلن را چرا اونش کار نداریم چه احتمال احتمالات متعدد و ارز کردیم مهمترین ای رو که میتونیم برای این جد ارز بکنیم زواهر نشون میده که قومی ها کلن با یحیل نه عبدالرحمن ازر با این تفاصیل خیلی آشنا نبودن مثلا در دو تا فهرست ما طریق اصحاب ما به کتابش از راه قوم نیست با اینکه زیاد از راه قومی مثلا الان ما در روایاتی که در کتب قوم داریم مثل کافی یا فقی در این روایات تماما یحیل از رق آمده مثلا غیر از یحیل از رق ما سه مورد در کتب اربعه داریم که یحیی نه عبدالرحمن ازرق آمده حالا یه یک موردش شبهه‌ایه یک موردش اینجوری بود یعنی یحیی الازرق ابن عبدالرحمن که گفتیم شاید یحیی الازرق ابن عبدالرحمن بوده ان اشتباه باشه دو مورد که قطعیه سه مورد الان ما در روایات اون یحیی بن از ازرق داریم همه رو شیخ منفردا نفی کرده یعنی شیخ طوسی مثلا اسدوسن سعید هر کسی یه شواهدی رو انسان نگاه میکنه حس میکنه یحیی بن عبدالرحمن در اون خیلی عنوان نداره بله مرحوم برقی در رجال خودش تو اصحاب الصادق فقط آورده تو اصحاب کاظم یحیی بن عبدالرحمن اخ یحیی الازرگ تو اصحاب امام صادق و امام کاظم آورده دقت میکنید لذا مجموعه شواهد نشون میده که چه در مستوای کتب روایت که الان داریم من غیر کتب اربعه نگاه نکردم مگه آن غیر کتب اربعه تو کامپیوتر نگاه کنم یحیی بن ازرق و یحیی بن ازرق در غیر کتب اربعه ما چه در کتب روایت که الان داریم و در فهارسمون ما یحیی بن عبدالرحمن النعزری رو در قم خیلی نمیبینیم این هست این واقعیت هست حالا شاید معلوم صدوق یا استاد ایشونه استظهار کردن که اینجا باید با و همون قدماتی که همز کردیم یحیبن حسان از رقش باید بعضی استظهارات یکی کرده چون در خود کتاب صدوق هم شش مورد کامنده فقط یحیبن از هیچ هیچی دیگه نیورده رضا احتمال دو موردش ابتدا کرده و اونی که گفتیم البته از این دو موردی که ایشون نمر کرده یکیش ظاهر زده ما مصادره ظاهرش البته یکیش از موسادن جفره سلام الله علیه هر دو مورد در حج هر دو در, در کتاب کافی هست و این الفاظ و از موسن و از طریق صفوان و هر حال احتمال داره که استظهارات صدوق برای این بوده حالا و انصافا اگر این احتمال تقویت بشه به ای وجه من الوجود انصافا در روشنی برش کلن نداره و من عرض کردم فعلا در میراث های ما جز همین مورد در مشیخ ما یحیی بن حسان الازر نداریم ذکر بلزا خیلی در این در رسیدحتی این مطلب که استاد همین قبول داشتن که یحیی الازر مراد ایشونه این کلاً یک احتمال یه احتمال دیگه هم هست که استظهار صلو نباشه تو اون نسخه ای که داشته اینجور بوده این احتمال هست به هر حال صدوق وقتی طریقش رو بیشان نوشته، البته اون نکته‌ای که من اون روز عرض کردم که بگیم یحیی الازرغ از ابی عبدالله مراد حسان باشه، ابن حسان باشه، نه مراد خصوص ابی عبدالله لزوماً که از مومن کازنه، یعنی مراد این باشه هر جا ابان ان یحیی الازرغ مراد یحیی بن حسان، طبقه ابان مصادر مراد از امام صالح طبقه مومن. خب اینم راجع به این قسمت. پس بنابراین احتمال دوم حالا اینم یه فی باز عده احتمالا که اصولا این استظهار صدوق نباشه از اون مستری که نهار اون مستر اینجور بوده این احتمالش هست بقید. حالا اگر تو مستر یهیم نه حسن از چه ایشون گفته روا یهیم نه حسان یهیم از زن حالا ما نمیفهم اون نمیفهم. میشه نمیفهم. و معیل این احتمال اینه که ایشون طریقه رو که ایشان برن دو جا از یهیو مستقیم نهار کرده یک جا عوان ان یهیو نهار کرده عوان ابن عثمان اون طریقی هم که در مشیخه او از راه ابن عبی عمر ان عوان ان از برده یهیو ابن حسن. که ظاهرا این کتاب ابن عبی عمر بشه پس بنابراین احتمال دوم اونه که بگیم صدوق تصرفی نکرده در اون نسخه تو احتمال داره در حد احتمال هست انصافا بین, بین الله در حد احتمال حالا نه در اینجا در یه مورد دیگری در کتاب ابن عبی عمر اینطور بوده احتمالا ابن عبی عمر در کتابش این طور بوده ابان ان یحیی بن حسان الازر ان ابي عبد الله مثلا ان ابي عبد الله این احتمالش هست چه و ارز که بگیم تصرف نکرده صدوب در چون اون یک جان گفتیم از ابان نهار کرده به ابان باز ابن عبی امیره. این احتمال هست انصافاً بین یا بین الله این احتمال کاملاً وارده که در کتاب ابن عبی عمری که ایشون داشته اسم یهیبن حسان عزرد بشه باشه. بنابراین که بگی مرمون شیخ صدور تصرف نکن در حد احتمال هست در حد احتمال اما و درینش هم اینه نکته فندیش هم از بکنم ما الان در کتب عربعه که داریم به استثنای این مورد صدوق اصلا جایی نداریم ابن عوی عمر انعبان ان یحیل از بر اصلا این نیست منحسر در همین جاز در فهارس هم نداریم اصلا ما در جایی نداریم ابن عوی عمر انعبان ان یحیل از بر این منحسر به شیخ صدوقه و در مشقه شیخ صدوق لذا نمیتونیم الان لا اقل در حد علم خودمون دقیق خود بکنیم در حد. چون کتاب ابن عبیومه که شما نیست چون این احتمال میاد میگه رو کتاب ابن عبیومه حساب بکنه اون کتاب در اختیار ما نیست الان اون چه که الان ما داریم که آیه خود ایشان 31 مورد حالا با اون آیه اهل نظر رحمانی شد مجبور واقعا 25 مورد باشه در هیچ کدوم از اینها ابن عبی عمر ان عبان ان یحیل از برمنداری الا همین روایتی که انا در قیبته این روایتی که در قیبته در کتاب کافی این یک روایت واحد است که ان عبان ان وجم لا نعلم اوه لا یحیل از رم قبل از چیز اباسب نعامره ابن, ابن عمر نیست قبل از عبان این چیزی رو که الان صدوق نعام کرده اگر ما باشیم مختلف قائله احتمالا صدوق به طب اون که در مشخه آمده روایت یحیل از از کتاب ابن عبی عمر نهار کرده اصولاً ما الان در روایت موجود خودمون از ابن عبی عمر به این واسه یا بلا واسطه مثل صفوان انی یحیل از وقت نداره کلن اگر رضا برفرض بنا بگذاریم که صدوق در اینجا تسامح نکرده چون انصاف قصه مرهوم صدوق رضوان الله تعالی تو اونجایی که ما ف اون مقداری که از حدیث سنن میکنه فوق العاده دقیق است. انصافا خیلی دقیق. حقاً یقا. بله صدو مثل بقیهشون گاهی یه قسمت حدیث حذف میکنه. بعضی هم تعجب میکنن که چطور میشه. خب شده چطور میشه؟ روی مبانی وصول مشکل نداره، روی حجیت خبر سر مشکل داره، روی مبانی وصول یا حجیت خبر اری مشکل داره. رو حجت اوقلای مشکل نداره. همین حدیث عمر بن حنظله معروف حدیث عمر الان حضر در باب به قولاهایی ولایت فقیه اینا ها تار زورده این حدیث عمر الان حضر چند بار گفتم سه بخش داره بخش اولش همین که اسلام ماها ولایت فقیه هست فیل نیجر تو حاکم یه بخش دومش که این کچیکه که این دو تا فقیه با هم اختلاف که چهار بکنیم اما هم میفرم خود به ما یقول و عدله همه و عفقه همه و راه همه هم حدیث بعد میگه هر دو اینطوره، این طورت. امام عدیز رو که نگاه بکنیم به سند اینها مستند اینها روایتی که بشه اعتماد. این سه بخش روایت ما رو هنزده. یکی اصلی بلایت فقیه. یکی تا عارض دوتا فقیه متبدی. سه این بخش هم تا عارض شیخ صدوق بخش اول رو کلن نیاورده. دو در حرف های رو دیگه. اصلا صدوق بخش کلا فقیه از اونجایی که این دو تا با هم تا <تصفيق> می کردن آورده دوم و سوم آورده همین حدیث مشهور مقدمه مثلا اصر کردم در کتبی که علن... در آن شاپ میشه حتی تو زمان آن بازی کتاب نمیخوام اسم آدرس دادن به فقیه که کامل آورده اشتباه کردن اصل اشتباه مال و صاحب وسائله نوشته بر هواب و صدوق خیالتن اون صاحب وسائله تسامونی کرده <تصفيق> این تساما هنوز که هنوز توی اسفاه ما رواش بردا کرده از کرد روی شواهد مولی اصلا مرحوم سره قالیبلر تقیح نبوده باله به قاضی تحکیم مثل خدای خوی الا اینکه آخوی آی حدیث کلا رد کرده به اسم تو تآرزن تا به تانصت نمیکنه مرحوم صاحب فقیه مرحوم شیخ صدوق بخش اولش رد کرده دومش رو قبول کرد و الا مرحوم هم قاله به قاضی تحکیم مثل مرحوم استاد قدس الله واسواره علایاهاله این نکات رو خوب دقت بکنی اما اونجایی که او برده انصافاً شده کم اما فوق العاده به نظر ما دقیقه در بحث متن حدیث اینشالا تو بحثایی متعدد دیگه ظرافت های کار صدو برم اما تو بخشی اسناد و تحمل انصافاً توی این مشیقه که آدم نگاه میکنه با خود کتاب یه نوع مشکلات داره صاف صاف نیست اینو نوع تصالفات متعارف کنید؟ بله ما ایبا... خب بحث موسیق بوده دیگر و حجیت این معنا نبوده تعبدی نبوده ما روایته رو در بحث آرز نبیترم از که مرحوم کلونی سه بخش داره شیخ توسی هست سه بخشش رو آورده شیخ کلونی اولش رو آورده بو... وسطش نبوده حذف کرده بس. اون وسطش مربوطه این که اگه کسی اقرار بکنه به سرقه حد براش جاری میشه چون مخالف مشهوره مرحوم کلونی نبوده آی خود این بحثه خودش از شیخ و ترجمه اینکه کله این بچه‌ها حث کرده فتوام داده یکی از فتوای شاذه آی خودیمان دیگه چون در باب سرقت میگن دو بار باید اقرار بکنه آی خودی به همین استفاده تام صحیحه به همین استفاده رو تام یه بار هم کافیه با یه بار سرقت دست خرج میشه اینا رو ما توضیح دادیم که اینا یک ظرافت‌های سرعمل اصحاب ما با این قانون کاری که سننیا و حدیث رفتن حل حد نمیشه این گفت که لغز خاص خودشه معما خاص خودشه نه ثالبی ای میگن نیست حجت چون دائم مدار وصولن میگن ما به این مقدارش وصول داریم چرا نشه حجت تعبدی رو قابل نبودن شما تو ذهن تو رفت رو حجت مثل اصلاح اخوی ذهن خودتون اول کنکاش بکنید میگه شما یه حجت تعبدی رو از ذهن وردی میگین مشکل نداری. حجت عقلایی میگه وقتی این قسمت حدیث و فتاوای اصحاب نمیخوره وصول بشه نداره حجت بینه چون ارسکردن صدوق و کلینی روایات رو بر اساس حجت بینه و بین الله آوردهن شیخ توسی روایات رو بر اساس نقل حدیث آورده اصلا فرق نمی‌کنه شیخ توسی کار نداره به مبنای حجیت او حدیث رو میاره همونطور که هست کم واجده این دوتا ولی از شیخ توسی ایراده حدیثش ند به حجیت این که کتاب ترذیب استفسار و در ردیف کتاب کافی و فقیه قرار دادن درست نیست به اصطلاح من کلانه ارز کنم کافی و فقیه گذینشی هم و استفساد گذینشی نیستن همجه حدیث میراث هم اصحاب بوده و برده. این چهارتا کتاب با هم دیگه فرق جوهری دارن کافی و فقیه هر داشون گذینشی هم در حدیث نه اینی که در ذهن شماست که در ذهن ما است. مثلا معارض داره با حدیث دیگه دیگه این رو اشتهاد یعنی معارض رو قبول کردن, کردن. نه این اشاری کردن در زن شما اصول عصول عملی جلی بکنن نه فرسوی این قسمتش معارض داشته و مشاریخ اون رو قبول کردن اون قسمت رو حضب میکنن چون بهش اعتماد ندارن و موسوق ندارن چون عرض کردن نکت زاویه نگاه لذا مثلا کتاب کافی یا فقی جامعه حدیثی ببعنه مصطلح نیست البته در خود جامعه حدیثی خود بخاری حدیثی حدیثیجا نعم میکنه مختصن اینجا متولن نعم دارن اما اونجا در کتاب بخاری تطویرش و اختصارش به حسب عنوان بابه گایی میخواد از یه تیکه حدیث مناسب با این باب نعم میکنه همون یه تیکه که مناسب با بابه میاره بله حدیث رو کلن هجه اونجای دیگه متولن اما ما اینجور نیستیم میگم همه رو ما اساس کار هر کسی رو یاد بگیریم. کلینی حدیث رو اون مقداری که حجتون بین ما و بین الله میاره. صدق هم همین کار میکنه. اصطلاح در اون زمان کتاب کلینی یا کتاب صدق مسنف نبوده. اصطلاح هم مسنف. من اون صدق میگونم یک کنه فی فی ایراد روید قصد المسنفین. فی ایراد جمعی اما روو. مسنفین هر چی می میابردن. چرا مورد از مسنف؟ مثلا هم فرض کنم هر رواید که توش لحن نبوده می آورده صحیح باشه باش. هر رواید که توش از پنج بوده می آورده صحیح می بوده مفتن مسنف مرحوم مرحوم استفسارش مصنفه. بله استفسارش خصوص روایت متعارضه بوده چار جده تحذیب ده جده تحذیب بعدش هم خود مرحوم شهر توسی اضافه برای این اصلا میگه من بعد از اینکه ابواب رو عبور چون ابواب شرح کتاب مقنعه مرحوم شیخ مفیده خود ترحمش رو مفیده مقنعه مفید میگه زيادات آوردم کتاب الکتاب مسخصا ببینید اینجا تعبیر مسخصا کرده یعنی هدفم این بود جمیع رواتفق بیارن هدفم این بود این گزینشی نیست نه تهذیب گزینشی نه استرسال بله استرسال به یک معنا گزینشی است استفسار متعرض روایتی شده که معارضن چون در حد تهاجم هست کتاب استفساریشون نوشته بعنوان رد, رد تاول یه بحث خیلی جالبی هم هست اگه آقا میگه میخواد در این روزگار جوانیشون حال هوسر ده اینا رو مقایسه بکنه ما کتابهایی داریم حتی اهل این تعلیف مختلف الحدیث ابن قتیبه شامل شده از علمان این اهل سنت این 370 ولاتشه یه چیزی دون دیوی سر قدش شیخ طوسی ایشون هم تقریبا منحج شیخ توسی رو میگیره روایات و رو سنگ میکنیش هم از این خیلی نفعه مثلا شیخ توسی حدود سال سی ابن این کتاب دعایه قاضی نعمان ایشون رساله داره این چاب شده تازه چاب شده چاب شده ایشون هم قصدش همینه روایت و متعارز این این قبلش شیخ توسی به ست سال اون قبلش شیخ توسی به دویست سال <تصال> این خودش... این تعبیر مختلف حدیث ابن قتیبه چون از مصادر قدیمی است خیلی ادبیات استن سنگین خوبی هم داره چون ادبیات ما همش سنگین نیست شیخ نوشش ادبیات عربی نیست هم مثل فارسی یعنی ادبیات گفتاریه نه ادبیات متون ادبی به خلاف نجاشی فهرست شیخ یا رجال شیخ اون جذابیت و لطافت و متانات و اصالت ادبی رو نداره فهرست نشستی داره چون ادیب کاملا مسلطه مثلا کتب سید مرتضی با کتب شیخ از این جنب خیلی فهمید شیخ عباراتش همون مثلا تقریبا به اصطلاح اونجا ادبیات صحبتی بهش میگن یا ادبیات عامیانه فولکلور بس یه نوع ادبیات عادیه یعنی یه صحبت عادیه نه اینکه های ادبی و متانت‌های ادبی رو و اون نکات جذا و عدوی رو در کلامش مرات بودیم. الان این کلف ماکان آلا از بحث قال شدیم، این دقت بکنید در این یعنی نکاتی که در بحث هست، اون چی که الان به دست مرسی برگیم به ی ازنظر به دست مرسیبه این چیزی به که برنامه صور گفته نیست الان من نمیخوام وارد بحث بشم. ما با یه ملاحظه ای که به نح دقت، در مقدار زیاده از مشهه صدو با متن کتاب و جه های دیگه کتاب بررسی کردیم انصافا تو این قسمت ها صدو خیلی قوی نیست چرا چرایش نبیرین معنی صدو در این بخش های سندی و بخش هایی که بر میگرده به تحمل حدیث اون مقدار دقت لازم رو که متوقعه نبوده حالا چون زاویه دید اینها به حجیت بوده چون حجیت بوده علایه حاله این اینشاله وقتی که من صحبت می‌کنم مخصراً یک حدیثی برد که از کتبی که تساهلشون در حدیث زیاده چون صروح کمه اما عده‌ای هستن که تساهلشون در اسانید خیلی زیاده ان یکی از ما پیش بیاد من یک صحبتای خاصی دارم میخوام پس برابره این احتمال دوم این که در کتاب ابن ابی عمر چون نوادر ابن ابی عمر که معروفه این کتاب ایشان 6 جلد بوده و شواهد زیاد بر وجود کتاب هست طبعا در اختیار منو صدوق بوده، چند جا یا فینال میکنه تصویر می‌کنه، فینال تو نوادر ابن عربی عمر در یک جای اینطور بوده، احتمالا اوان ان یحیی بن حسن ازادی گالو، بخواید توجیهاً کلام صدوق دیگه، والا هیچ راهی الان ما نداری. خیلی یا خیلی زن به صدوق پیدا بکنیم، بگیم در یک کتاب نسخه ابن عربی عمر در اختیار بوده، اینطور بوده. ما هیچ اطلاعی از این نسخه نداریم. و از کردید ما در بحث حجیت خود دقت کنید ما تابع حدل علمی نه تابع حدل چند این چند دفعه من مثال مثاله ارس از علمو اهل سنت داره میگه من بعضی از رجال رو جرح میکنیم قبول نمیکنیم روحاتینه ها رو ممکن است ایشون الان در اعلی درجات بهشت باشه خب ما ار نداریم ممکن است خیلی باقا باشه ما ار نداریم به بساقت ایشان ما الان در حد دول واقع که کار نمیکنیم در حد دول علم در حد حجیت این نسخه ابن عبی عمر به ما نرسیده ما هیچ روایتی الان غیر از اینکه که صدود کرده و صدودی ما دارم تو اینجا تصامح داره نداریم که ابن عبی عمر انعبان انی یحیل از بر چی برسه به یحیل نه حسان الاز و چون احتمال قوی میدیم که یک نو، چون اگر بود لاغل اسمش تو کتاب میابود اینکه اسم تو کتاب یحیی العزب آورده ظاهر تو متن اصلی اینطور بوده این شیشه مورد در همه شهر نظر آورده لذا فعلا عبارت صغو از نظر رجالی و از نظر فنی و از نظر علمی نمیشه برای ما مشکل درست بکنه شواهد کاملا واضح ما حاکث که ایشون یحیی بن عبدالرحمن از بغ و است و قابل اعتماد یه مطلبی رو امروز من نقل کردم که ایشون با پنج نفر از بزرگان هم‌دران شده از بعد از آوانم بعد بحث از بحثیم بعدشان دو بار داد که اون اسماعیل ازرقه راستی من اشتباه کردم اون اسماعیل ازرقه و اون مطلبی هم که من گفته بودم در همون اسماعیل ازرق بهتره تو توی اون مطلب گفتم ما از هیچ معلومات نداریم اون مطلب من تو حالا یهیا رو الان گفتیم مثلا کن نجاشی دیگران روایاتش هست اما اسماعیل ازرق رو اصلاً ازشون معلومات نداریم جز اینکه شیخ در اسباب امام صادق فرمود بن سلمان الازر هیچ چی از اونش معلومات نداریم به نظر شرط به همین اسمش بودش یعنی در کتاب فهارس کلا نیامده یه چهار پنج تا روایته که مثل عمر بن نعزینی که مرده بزرگی بودی میگه انظره و بریگ و ازر. اون تعبیری که من گردم که خیلی معلومات ما راجی کمه باز یحیل ازم بهتر از اون اون خیلی ازش بدتر ازشون در معلومات خیلی معلومات ما راجی بود. اون شخص کمه فوق العاده معلومات ما کمه اما وقتی بینیم مثل بن ابن عزینه او رو در اداد و استاد و بزرگوانش قرار میده حس میکنه آدم یک شخصیتی بوده اما روایتو هم زیاد میچاپنش در روایت باشه خیلی روایت زیاد. و هر حال یک اشتباهی زارین دو بار من در کلماتم تکرار شد کلا اشتباه کرده ببین یعنی اولا اون اسمایل یعقوب نیست اون هم که راجع به یحیی گفتن درسته یعنی واقعا شخصیتی یحییات می‌شد اون به واسه داریم اما اون مطلب که معلومات ما خیلی کم به احتمال این شخصیش بالا باشه اون او اسماعیل بیشتر چون از اسماعیل از خیلی کم از یحیی اون کمتر معلومات داریم. فوق العاده کم روایتش هم زیاد نیست همه وقتی میریم یاد در اداد زرارو و محمد مسلم قرار میگیره در یک مسئله ای میفهمیم حس میکنیم احتمالا جزو شخصیت های قابل حساب در کوفه بوده که معلومات ما فوق الادازش میکنیم خب این روایات رو ما داشتیم راجع به روایاتی که تعلیم تعبیر قیبته داریم یکی یکی حالا یعنی این روایات عوان اما من یه گوییم ای وزیران طهران در مقطعی ولی طهران زیکر کارخات نیست شبه آن چون طهران توی زیکر کارخات نیست من ذکر را من خلفی به ما هویم من ما عرفان ناز لم یاخته باه. ایشون در این روال امام میفهمه اگر پشت سرش باشه و مردم میشناسن یعنی شخص قائبه اما اب قابل نیست اب مسلول نیست و من من من خلفی به ما هویم من ما عرفان ناز فرد اما اگر شخص مستوره ای و این غیبته شخص مستوره ای و مسکوره شد و من ذکر او به مالی سی فقط بحثم درست دره درست الا اینکه زواهر عبارات شیخ به اینه که مثلا این تعریف تعبدی غیبته به نظر مو تعریف و عرفی قیبته چون من این نکته رو کردم با صفر میکنم چون لحظه اختیاب در خود قرآن آمده باید داره یک مفهوم و عرفی باشه میشه که تنبود صرف باشه ولایت یکتر بعضی کن بعضاً در خود قرآن ولایت تجسسون مثل اشتنه با کسی را مند رن. در صور حجارت این طوره غن کثیر نظام با تو عرفی باشه دیگه ولایت یکتر به نظر ما بهترین تفسیر رو همین روایت که الان به نظر ما هم درسته و از بعضی از کتب لغت هم این در ما در غیبت در مفهوم قیبت دو نکته رو بگیریم مشخصه که خود مقدس این موضوع, چرا موضوع گفتیم گفتیم تصرف کرد ذکر که اون رو گرفتیم بگیم که دوم باشه پس یه قیبت عرفی شد یه غیبت شرعی شد حالا این روالت رو عادت بر هم در غیبت شرعی نکنی هم بر قیبت عرفی پس در عرف در قیبت دو چیزه اولا باید اون عیب باشه چون لفظ قائبه از لفظ قائب هم درمیاد میاد یعنی مستور نه معدوم اگر نباشه معدوم میشه مستور نمیشه دوم دو اینکه اون شخص غائب باشه چون مادهی سوم اینکه اون عیب هم مستور باشه این دو تا قید بلکه هر سه از ماده یه خبر در اومده ماده شینه از غیبتش این میاد چهارم نکته که انسان اینو ابراز میکنه این از هیئت افتعال در اومده بحثا رو برگردش علی اتون باشه عسکری در بعض از کتب واقعا اومده قاب این رو به مافی گفتیم بر ما روشن نیست که این ذکر از ماده باشه ظاهر از هیئت تو این دوری که تعالی ما در اینجا در باب غیبت و واقعا این مقدار اختیاریه بله خب اصلا ما برایش درس میگیم برایش اینو در تحقیقات علمی میگیم برای اینکه این عرف رو و دائما نمیرسه یه جایی که واضح باشه میگه ممکن است بعضی از عرف اینو میفرمون بعضی از عرف مثلا آیه خویی غیبت شخص رو در غیبت مطرح حاضرم باشه. ای قیبت. نمی کنه میگه اگه حاضر هم بشه ایب مخفیش میگه غیبت فکر کنم اپ معافر بشه دیگه مشکوک میشه یه بزرگ میگه هست بقی نمیاد نیست این منخلفی در اما آمده پس باید منخلفی باشه اما همون نباد باشه دقت فرمونده؟ پس بنابراین این است که ما اصولا در بحث لغوی در اون موضوعات شرعی راه ما اینه یعنی ما مفردات رو هم تحلیل میکنیم نه جمله مقدول تصوری با هم تحلیل میکنیم الان برای شما ما تساب مثلا دقتم می‌کنیم کجاش به ماده برمیگرده کجاش به حیعت برمیگرده مثلا در اینجا ذکرول انسان الغائب این ذکر این رو از حیعت دروردیم از ماده دروردیم اما غائب بودن شخص و غائب بودن عیب و وجود عیب رو از خوده ماده درورده ماده غیبت این توش دروردیم. و حسنت عبدالرحمن ابن سریابه به ابن این ابن حاشم ایبراهیم حاشم چون قدما میگتن ابراهیم حاشم توصیح ماشت اما ممدوحه لذا روایتی که ایشون توش بود حسن میگفتن اما خب خود عبدالرحمن سریابه رو در از درور چنده داده ترجب از ایشون که رو ابن حاشم حساب مگر اینکه ایشون محمول شیخ یک کمی <تصفح> اصلا مرادشون چیز دیگره بوده چون این رو دارن عده از علما ول حسنت رو الی عبدالرحمن النصر این قدیم عبارت فهم می کنن گاهی بخوستن این طور رو یکی این ربادت تا خود عبدالرحمن نصر یابه هست خود عبدالرحمن مهل کلامه اینه تعلقه الى اگه بخوستن حسنت ها عبدالرحمن نصر یابه این خود عبدالرحمن مشکل نداره. اگر بغوث بگن نه مشکل فقط در سنت در سنت موشه مثلا حسن بود نه خود عبدالرحمنم واضح نیست میگفتن وله حسنت تو الها هم دار این تو حد عبدالرحمنن سریه به حسن هست، خود عبدالرحمن با بررسی بشه قال قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام میگه تو، علیبته ان تقول فی اخیک ما این خوندین مفصلم خوندین گفتید دو نو سه ده نو سه ابن مرو بود نو سه بود که بود عبد الله علیه السلام بود کی بود و این و عمل امر ظاهر مثل الهدت و این تو نسخه دیگه نبود توی این نسخه آمده و ان انتقول فیه ماله سفیه این امر ظاهر شده در این جامل نسل و عجله این محل اشکال بود در که توضیحاتش بوده و بعد توضیح رو نفعه میکنیم توضیح هاییش و حال ها اخبار کماترها سریعت بود که اعتبار کنشه به اون کشه ایشون از اخبار داره که اون شی بات منکشف نباشه در تحلیل ماده قیبت ما عرض کردیم از اخبار نمیخاییم اخبار رو عرفی رو گفته ما از خود ماده غیبتینو در میاریم چون غائب یعنی باید باشه ولی میگه ممدوم ایشون میگه اعتبار شده در غیبت اگر شما پشت سر کسی چیزی بگین در درو نیست این غیبت نیست این بهتانه در قیبت باید درش باشه این از اخبار در بایده نید بحث اخبار نیز ما اشکال ما مرمون این تو ماده قیبت غیبت این قائب این پوشیده اگر نبود میشه معدوم نمیگم قائب از خود کلمه قائب در میاد که باید باشه و یا اگر داره باید کلام سه ها رو آورده ایشون نویشتن نتکرده به خلف انسان به این به مایق و مهو داره این ارز در نصفه که ما داریم او به ما. او به ما یقوم مهولو سنه و توضیح رو تکرار نکنم. این یتکلم خلف انسان مستور. این معنی قرفیست. یقوم مهولو سنه هم معنای شرعی و است که شارع بهش اضافه کردون. بعدی شروع فن اراده المستور من حیط دارک المقول وافق الاخبار به انعراد مقابل متجاه احتمال موافقه و مخالفه. ارز کردم این راهی رو که من روشه مرادیشون مستور همینه که باید قائب قیب صدق قائب باشه و ملخصه مجموعه اند شیع المغول نم یکن نقصن فلا یکنو ذکر و شخص هینه زن ریبتن و این ملخصه که ایشون آورده برده فلا یکنو ذکر و شخصه. این هینی زنگی که نقص نباشه درسته در مفهوم و عرفی و اینه تعداد مقوله فی کار نه او نخسنده نه اعتقاد نمیخواد نمیخورد رازی نیست یا قو مقوله و سمنه نزیر ما اذان خواه آنها لشها و لیس من منیک که اخسند فی حقیقی اگر نه او مطمئن به اشتاد مسی نه بر یک و مخالف من و جن آخر روشنش بود که حرمتی این از بعد جا آخر نیست که ما روشش کنیم حرمتی این از باب اون اون تعبود است ذکر رو که اخاق ما یک رهون لبس همه. فقط نقطه اشتباهی در اینجا پیدا شده چیه؟ ارز کردم چون لغت در, در زبان عربی متاسفانه یه متاسفان ها نشده لغت درست دقیقا زبان عرب رو منعکس بکنه. چون از قرن دوم تدویر شده. دست اسلامی ها تدویر شد. اصطلاحات دینی و روایات تأثیر گذار شده این تضمیم اون پیمه برم هرام دیگه خوب مثلا طبق تصور ما ذکر رو که اخاک ما یک نهول و سمه این یک تصابق است. اما عرف این است انسان مستور عیب مستور انسان رو بیان بکنه نه که بادیه و اینا میگشتن اصلا خب با دین و اینها که سرکار کار نبودن متدین بودن دیگه نه خب بادیه اصلا صحبت دین و دیانت تا کوچ عرب بادیه نشین عرب بادیه نشین بودن دروزان یه قرآن خوندن نماز می‌خوندن در اختلافات داشتن یکی بود شیعه یکی بود سنی بود دیگه اختلافات بود بعد از بادیه گرفتنش مهم نبود بعد که اون تدوین کردن اون مهم بود چرا میگشتن بادیه می نوشتند محدثی هم این کار میکردن ببینید محدثی میرفت پیش کسی ممکن از یک شیخی ده هزار حدیث بنویسه، اما وقتی این اومد میکرد ممکن کلندش از و پنج حدیث که من ارز کتاب احمد حدود سی هزار حدیث داره مستدش. میگن این رو انتخاب کرده از یک میلیون هفت هزار حدیث یعنی اصل احالیس یک این سی هزار تاره انتخاب کرده توی لغت هم همین مشکل بوده اینا که اصلا سوالهای قدر پنجم شیشون هم که بدتر دیگه اینا اینا که اصلا دخل کرده بعدم در سهها خوندیم الان ماجاع فلحدیث س... فلحدیث عنوی الله خوندیم عبارتی مال لسانه واضحه که آمده اون اصطلاح شرعی رو با اصطلاح عرفی جمع کرده او به ما یقومو. و هر کردیم مرحوم استاد این اصطلاح مشهور بین ما ذکر و ما یک یقومو حالا چون وقت چیز اخرش من فعلا تنشید به فردا توضیح میشه ما از مرحوم اصولا نل کردیم که ایشون ذکر و ما یک یقومو فعلا صحیح ثابت نیست راست از من باز دو مرتبه دو مرتبه و سنف به چند روزی بررسی میکنن انصافا مشکل ده نظر فنی مشکل داره. به لحاظ اون راهی رو که مرموم استاد رفتن خب سنده ضعیفه به لحاظ اهل سنت صحیحه تو سری مسلم هست اما به لحاظی صحیحه که ایشون رفتن مشکل داره که بازه به لحاظ راهی که ما چون گفتیم در روایت احلویت آن دارم مالا سندش درست بعدها تا اینجایی که الان من رسیدم توی روایت احلویت نمید مثلا توی عمالی شیخ توسیه مثلا در حدیث عبیزن وسیعت و که اون از اهل سنت گرفته شده اصلا عیمه توسندون ردیسی مجبول هم هست حییت ترکیبیش مجبوله نمز کردیم تا اینجایی که من دو مرتبه شاید دو مرتبه سه سر مرتبه این رویت جماله حاییست از اول تا آخر باز دو مرتبه با. متاسفانه در کتب اصحاب ما که منتقی بشه به عیمه برو با ظرف اسلام اصلا این ضعیف زعیق. <تصح> زعیق یا کذاب از ما مصادر نه بکن تا اینجای که من نگاه کردم اگر در نصف فقه و می آمد خوب بود فقه و صدوق در این پیدا نکردم تا اینجای که من تا رو کردم پیدا نکردم من ارز کردم یک حواعد کلی رو عرض کردم خیلی از احادیث عامه که مخصر در فقه کار زیاد داره نحوه ورودش به دنیایشیه شیه غالبا اشیق توسیه اونان در کتاب خلاف یا محسود مثل مثلا علمیت ما اخده قبل از شیخ توسی تو مسادر ما نهامن توسط شیخ توسی تو مسادر یا توسط علامه است که اینها یک مقدار بعد بعدها چون شهید اول شهید سانی به خصوص خیلی با مسادر را آمنه کار کردن یه مدار از تفکرات و تحلیلات رجالی و غیر رجالی طریق شیخ شیرسانی به مسادر ما وارد شده دقت میکنه تا که من نگاه کردم الان الکه خلاف محلیز نگاه نکردم مثلا احتمال دیده این شیخ توسی تو کتاب طبیانش این مطلب رو گفته باشه میگرد در مسادر قدیمی اصاب پیدا نکردیم در طبیان شیخ توسی مراجعه کردم طبیان شیخ توسی یه مطمی اوله که تسته همون عجیب تره نویشه ذکر که اخواب به ما یک الله <تصفح> حال یک رهول نیست یاکره الله یعنی ای باشه ای دو واقعی باشه به ما یاکره الله این یه تعبیر خیلی عجب عربی علیه حال ما تا حالا اون تعریف شرعی ریبت رو مخرقانه میگرفتیم وجود بین عصا این شواهدی که تا حالا ما بهش رسیدیم اصلا این چند تا که خونیم اصلا ذکر این تعریف توش نیومده ظاهرا بیشتر این شهرت این معنا از زمان شهید ثانی باشه تا که من اونوری ششینی را کتاب نداره که شوری یا فی احکام رو ایشون رو با تحلیل صنعت آورده و ظاهراً این شواهدی که در زمان ما آمده، حالا بعد من هموز تکمیل کردم. حالا امشب یه مراجعه میکنم به این کمپیوترها. این طرح رو من ازش بکنم چون من عرض کردم آیکویی بیل از سندش کردم. ما میگویم نمیتونم شواهد دفاع کنم. دنبال شواهدم کردی. مثلا هدیه اصیته نو ویلاویزه اصلا به درد کاری نمیخواد ارزشش نداره شاهدی نیست که بتونه کاری بکنه توی شواهدی که تا حالا ما واگشتی در شیعه این نیامده مگر همون راه اهل گوجردی که اگر حدیث بین اهل سنت معروف باشه و ایمه رد نکنه خودش امضاست اینم خیلی مشكله چون در روایات مثل این روایت از ازرق انسان امام سه صورت رو ذکر کرده بر بعد در روایت عبدالرحمن سیاب دو صورت لا ذکر شده خود روایت نامه باشه کاملا شبهه پیدا میکنه تو مصادر بعدی ما که خیلی سر کردن نصوص روایات اهل بیت رو منتقره به فعل بکن به صف پرزان نمیانده به خوان لا اقل شیخ تو تو تبیان آورده باشه چون در کتب اهل سنت در زیل اای مارکه در کتب تفسیر زیاد آورده شیخ اونجا هم نی در کتاب تبیان هم نی لذا اون تعریف تعبدی همونطور که مرحوم استاد اشکال کردن خواهی نمیشه فردا تکمیم رو بحث, طرح و, و, بحث. الله و محمد